بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المسلين وآله والصحبه أجمعين أما بعد سيو فانجمين دارسة دارسة سوري يوسف عليه الصلاة والسلام فالمدي الله جل شأنه اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا هم القميصي هس یک بار از سنش در و و به خونی کردن. این بار ولی خب است دیگریست. که مفسرین گمانه زنی زیاد میکنن میگن این قمیس مریاسی از ابراهیم بوده. به ارث برده یوسف. برکت ابراهیمی توش بوده و نمیدونم از این خرافات ها و از این داستان های نه اساسی داره نه سنتی داره. گمانه زنی هست و معاربی به قول معروف توشه یعنی توش. قصد و مقاصدی دارن وقتی که این قضیه را یاد میکنن میخوان یک جلوه تبرکی یک جلوه خرافاتی ایجاد بشه که به پشت این قصد و داستان و افسانه، یک اعتقادهای تسریق بشه به جامعه و افراد افرادی سو استفاده بکنن این همون قطعه هست که از پیراهن ابراهیم اون ملا میگه این همون قطعه شمشیر محمدیه این میگه قطعه موسوی این میگه قطعه ای هر کسی برای خوش دائمی میکنه برای خودش یک زیارتگاهی میزنه اینها هست بودن در طول تاریخ در همین تاریخ اسلام میان مسلمان ها که بهره برداری کردن از این قضايا الان هست اموی رسول الله صلی الله علیه و در ترکیه سندش کجاست از پیش کی بوده به دست کی رسیده ما هم اونت که روایت بدون سند نمیپذیریم آثار رسول الله صلی الله علیه سند نمیپذیریم ما امهت خرافاتی نیستیم امهت دلیلیم بدقیله و متبع ما انزل الله قال بل نتبع ما الفینا عليها ابونا ما اینطوری نیست این مشرکین بودن اگر بهشون دلیلی مدرک میوردن پیامبران و براہین میوردن میگفتن آبا اجدادمون اینطوری نه ما اینطوری نیستیم اگر ما بگیم آبا اجداد خودمون اینطوری دیدیم و این کارو میکردن ما هم مثل مشرکین چه تفاوتی با آنها داریم فرق ما ذیت ما با مشتکین در اینه که ما امته دلیل و برهانیم همینطوری هر حرف کسی رو نمیپذیریم اینجا اكون فاسقون بنا بين فتبين کسی خبری چیزی آورد تبیین کنید رید. تحقیق کنید صحت و سقمش نگاه بکنیم ما امته دلیلیم قرار بر این نیست که هر کسی هر چیزی گفت ما باور بکنیم نه با دلیل چش رو سرو چش می‌ذاریم ولی بدون دلیل خیر این قمیص یوسف قمیصی که یوسف بر تن داره یک بار این قمیص را بیرون آوردن با خونی آغشته کردن و بردن نزد پدر که پدر را فریب بدن که یوسف کشته شده توسط گ اونجا دروغ می گفتفتن اونجا صادق نبودن اینجا باید قمیس نقش دیگری ایفا بکنه اونجا نقش دیگری داشت قمیس نشانه دروغ بودن برادن یوسف بود اینجا قمیس نشانه صد یوسف یوسوفات باشه پدره بوی فرزندش رو میفهمیم و هر چندن بحث مجزه رو خواهیم کرد اینجا یوسف علیه السلام توسط اون وحی که ارتباطی که با الله داشته و جبره رو ساخته ولی السلام پیراهنش رو میده که ببرن این کار اعتهادی نیست این کار زنی نیست. این کار تبرکی نیست این کار معجزه است پر از تبرک رو نمیفرسته به پدرش چون پدرش هم پیامبره برکت انبیا رو قبول داریم اگر تن یوسف علیه الصلاه و السلام مبارکه تن یعقوب علیه الصلاه و السلام مبارکه نیازی به برکت فرزندش نداره این پیامبره اون پیامبره مگر نه یعقوب علیه الصلاه انی الله و, و لا تعلمون مگر علم الهی نداشت الله بهش وحی نمیکرد خب یوسف هم همین طور. هر دو تا پیغمبرن با الله در ارتباطن توسط جبریل پس قصه قمیص از طرفی مهر تایید و صدق برای برادران یوسف که این بار دارن راست میگن برای تعییدشون داره میفرسته این پیرهند پدر از بوی یوسف تشخیص میده که اینا دارن راست میگن برهان و دلیلی فرستاده چیز دیگه نمیتونست بفرسته به برادرانش که آقا این برادرانش دارن راست میگن پدرشون دارن فریب نمیدن که بیا بمصر نه راست دارن میگن مهر تایید لباسشه این لباس منو ببرید و پدر رو بیارید تقاضا کرده که پدر رو کل قوم و قبیله رو بیارن پس اینجا پیراهن رو فرستاده عیسی علیه الصلاه و السلام برای صدق برادرانش البهوب قمیص هذا فالقوه على وجه ابي فالقوه على وجه ابي این پیراهنو صورت پدرم بکشید. الخوا بکنه بر صورت پدر. بزاف پدر بو بکنه. حالا ها یک زاویه اینجا باز کردن. قلووی هم هست. شاید توی این قضیه بعضی کاسیبی رو هنداختن اثر عرق در شفای چشم، اثر عرق در بینایی، اثر عرق در فلان. اینجا عرق یوسف بود، و با هم خشک. عرق کجاست؟ کتاب نوشتن معجزه الهی در عرق. بعضی جاها ما این مغز را نباید بازیچه قرار بدیم زود باور بشیم شاید عرقم تأثیر داشته باشه ولی این کار کار پزشکه کار اکادمی و کار آزموشگاهی ولی آخره ولی اینجا این قصه دلار بر عرقی نمیده چون عرقی اینجا در کار نبود پیراهن خوشکه پیراهن خیزکه نیو بردن از مستاها سرزمین شامکه یا مثلا اون آقای نجارنامی در مصر کتاب مینیویسه در معجزه قرآنی در اینکه سیاره هایی که در منظومه شمسی 11 تا سیاره ما داریم تنوز کش نشده نگاه بکنید قرآن کشف کرده این نغا ایت و احد عشر کوکبا نگاه بکنید این 11 ستاره ای که میگه هم سیاره ای هست که در منظومه شمسی دارن دور خورشید میچرخن 11 سیاره فوجاست ناهید و مریخ و مشتری و زحل و 8 تا 9 تا بیشتر نیستن کجاست نپروتون نوترون نمیدونم تیترون خب میخندم بهمون به قرب میخندن به امون این همه تلسکوپ کجاست اینا چرا ما نمیبینیم پس با این تلسکوپ ها تلسکوپ هایی که که های دیگر رو کشف کرده منظوم های دیگر رو کشف کرده این منظومه راه شیری که چیزی نیست براشون که با چهار تا تلسکوپ بخوان رصدیابی بکنه نه این معجزه قرآنی خ... الله 1600 سال قبل گفته معجزه قرآنی در چی معجزه قرانی در این که منظومه شمسی 12 تا سیاره داره معجزه قرآنی در این که خواب دلالتی بر توحید و یگانگی الله داره از قبل الله خبر داده که یوسف تعظیم میشه ستاره ها نمادی از برادر یوسفن سر به رکوع و سجدش در میآورن خسی رخ داد خوابه این نو سبب تنسخور ما میشه ما مسلمان ها یک امتی عقب افتاده ساده به ما نگاه میکنن نباید انسان زود باور باشه نباید انسان قرآن را یدکی قرار بده برای اون برنامه هایی که برای خودش چیده برای شهرت برای اینکه خودش رو مثلا یک فرهیخته و یک دانشمند جلوه بده و قرآن را از این وسط بیاد ازش بهره برداری بکنه این ما یکی نمیتونیم ساده لوح باشیم اینجا و از زود باور بشهیه ت به تمیسی ها دف ال القه ولوجه ابی یه اتباسییه میدونست که پدرش بیناییش از دست داده ولی خب نه اون طوری که مثلا کور و بشه یعنی چتون مفسری میگه و بیاضت عینا. چش سفید شد از گریه زیادی دی خوب نمیدید ضیو شده و چشمش این پیرهها رو میفرسته که چشمه یخوب عليه حسات اون بینایش بهش بربگرده حالا اگر نبین هم بوده فرقی نمیکنه مهم میه که اینجا یک معجزه رخ بده، یک معجزه خاص یعنی فرستادن پیران، یک معجزه یوسفی اینجا علیه الصات والسلام. و اتونی با اهل قم اجمعین این پیران و مدرک میفرسه برای که کل خانواده یعقوب رو بونن بکنن از سرزمین شام به مصر. همه خانواده میگن 76 نفر بودن، کل خانواده یعقوب فرزندان نواش 76 تامن بودن. الله اعله. وقتی که موسی آنها رو میگن علیه الصات والسلام از مصر در زمان فرعون خارج میده میگن 600 تامن بودن. یا همه اسرایلیات چون فاصله زمانی خیلی زیاد نیست بین یوسف و موسا پس خانواده یعقوب آل یعقوب بلند میشن از اون سرزمین که شام از اون سرزمینی که صحرایی تقریبا بود یعقوب خودش شطور و بوز اینا داشت سرزمین آبادی مثل مثل نبود که رود و چشمه و بود باغ و بستان و درخت و اینا داشته باشه اون امرار معاشی که تو شهر هست توی روسته ها نیست برای امرار معاشق تأمین زندگی خانواده یوسوف حسات اصلا کل خانوادهش رو بلند میکنن برای سکونت و زندگی به مث میاره چون اونجا هم حرکت تجاری بود هم رونق بود و مف سالاتی رو قال ابو هم این نیل عجی یک معجزه دیگر اونجا قبل. معجزه یکی بود یوسف که مطلع بود که این پیراهن بود بفرسه برای اینکه هم مدرک باشه هم اینکه چشم پدرش بینا بشه معجزه است از قبل میدونسه که این پیراهن سبب میشه چشم پدرش بیناییش بهش بر بگرده یعقوب علیه السلام وقتی که قافله داره میاد از راه دور حالا بعد میگن 15 کیلومتر 8 کیلومتر هر چقدر بوده ما کار به کیلومترش نداریم مهم اینه که این بو از فاصله زیادی به مشام یعقوب میرسه اونجا میگه و قال ابوه یعنی یعقوب علیه السلام انی لا اجد الريح یوسف لولا من بوی یوسف به مشامم داره میخوره اگر نگید که من خرفتم زده پیر شدم نمیفهمم عقلم ما دست دادم من بوی یوسف به مشامم میخوره اینجا یک ای هست برای اینکه یعقوب علیه السلام اونجا معجزه‌ای برای یوسف اینجا ای برای یعقوب در اینکه دور از فاصله دور با اون حس بویاییش اون بو رو میکشه به بینیش میخوره خب این طبیعی نیست از فاصله دور آدم یه بویی که از یک فاصله دور به مشامش بخوره و اون رو حس بکنه حس طبیعی نیست یک حس ماورای طبیعته این میگم معجزه چیزی که ماورای طبیعت رو خب بده معجزه ماورای طبیعته خب حالا بعضی این قمیس یوسف و این بینا شدن یقوب را یدک میکشن برای یک سری اعتقاط های خرافاتی و بدعتی و نوباری هایی در دین شده با توجه به این داستان این پیراهنه خب اینجا در این قصه ما پیراهن پیامبری میبینیم پیامبر اون پیراهن رو میفرسته پیامبر دیگر که پدر اون پیامبر قبلی بو مشامش میخوره بعد پیراهن رو نزش میارن بعد اون پدر با پیراهن فرزن بینا میشه خب این داستانی که اینجا الله داره نقم میکنه بهمون. وجه استدلال استنباد از این داستان برای خرافات و یک این افسانه که نگاه بکنید. اینجا یعقوب علیه السلام متوصل شده به پیراهن فرزندش یوسف پس توصل به هم بیا جایزه به حبت عجب استدلالی توصل با تبرک فرق داره توصل جایزه با توجه به قمیس یوسف توصل انسان به مرده میکنه یا به زنده میکنه یا توصل به الله میکنه توصل ما داریم ما با اینکه که توصل به الله بشه به اسماع صفاتش توصل به فقرمون به حالمون به ایمانمون ما انواع توصل داریم استغاثه داریم جایزه توسل به صفات الهی و توسل به ایمان خودمون ربنا اننا آمنا ایمانه و برلاپس ما رو به عفف لنا توسل به حال خودمون داریم ربی ان نيل ما انزلت الي من خير فخير حالمان من ففقیر بر الله محتاج تام توسل ها داریم توسل به عمل صالح اون صنفره که در غار گیر کرده بودن و گفتن کهشون من به خاطر پدر و مادرم شب تا صبح روی پاها می ایستادم توسل به عمل صالح بود از اون غار نجات یافتن صخره است جلوه غار برداشت شده ولی اینجا آیا ای توسل به آدم زنده به عمل صالحی ای به ایمان بشی اینجا توسل میگن نه اینجا توسل به پیرهنه خب ما قبول کردیم توسل به پیراهن که این تبرکه حالا به قول خودتون خب قیاس بر چی میخواهید بگیرید قیاس بین توسل به مرده بشینیدن مرده شما به من بگید وجه ارتباطی این دوتا تا قصه و این این دوتا استدلال چیه چطوره با هم دیگه جنب ببندیم این توسل جسبی یک پیرهن یک معجزه تبرک به یک پیرهن داره اینو يدک میکشه برای اینکه بگه جایز که انسان متوسل بشه به دعای مرده که تو قبر خابیده چه ربطی با هم دیگه داره؟ کجا داری تو شینیدن به مرده داری ثابت میکنی تو دلیل بیار که اون مرده می‌شنوه. تو دلیل بیار آیه قرآن رو نقض کن. انک لا تسمعوا الموات تو مرده‌ها رو نمی‌تونی بشنوانی و ما انت تسمع من في القبور ای محمد علیه الصلاه و السلام. تو نمیتونی صدا تو به اون مردهگان برسه. تو این آیه رو بیا نقض کن. دلیلی بیار آیه این دلیل میشه بر اینکه این آیات اشتباهه؟ تو دلیل دلیل میاری اینکه مرده می‌شنوه؟ چه دلیلیه؟ پیراهنه اینجا مرده است. حسش اینیدنه اینجا حس بویاییه این حس با اون حس فرق میکنه چرا قیاس الکی میگیری مغز ما هم یدا کشیده مغز ما هم شده بازیچه دست این اون ازش بهره برداری بکنن برای اینکه کل دارایمون بریزیم توی چاله ای میگی که بیام دست چهار تا فقیر بعد وقت مسکینی بگیری راهش نیست صدقه دفعه بلاس رو صدقه بده برو ناز کن بده به چهار تا بدبختی محتاج چهار تا مریضی این بله مشروع بل اینکه که تو بری تو چالی تو نمیدونم چهار دیواری بندازی که نمیدونی آخر آقابت این پول کجاست و کجا میره و چی میشه خدا میدونه که به دست یک فقیر محتاجی برسی اینکه نشد که عقل سامات است عقلش استفاده بکنه یک عدی دیگه میگن نه میگن که اون ذریح اون چار دیواری آهنی اون نمیدونم دیواری که دور یک قبریه اون برکت داره این پیرهانه یوسف دلیل بر این میده همون که اینجا این پیرهانی که بتن یوسف خورده مبارک شده اون قبری که هم خاکی که روی اون میت ریخته شده اون میت آدم خوب و صالحی بودی یا پیغمبر بودی یا ولی بودی یا هرچی بوده اون خاکه هم متبرکه و اون دیواری که روش زدن بس بدونیم و بکشیم به اون چهار دیواری این با ما و فهم ما و شور ما در نمیاد ما همونه خطاپ حجر الاسفل که از بهش فرستاده شده و رسول الله صلی با دست خودش بلند میکنه میذاره تو اون زاویه کعبه با اون شرفش با اون مقامش که نزدیک بود کشت و کشتار بشه که آقا کی باید این سنگ بهشتی را بذاره در اون جایگاه بعد رسول الله صلی میاد واره میشه که این امینه میذاره اونجا و منو خطا میگه والله انی لا اعلم انك لحجر لا تضر ولا میدنم والله لا تو تدرس و لا نفع تدرس والله اگر ندیده بودم رسول الله تو رو هیچ دمعن بی و حسی نداره معجزه ای نیست تو فکر بکنی آقا یک کوری ببرید اونجا نابینایی ببرید میگه چشمشو بکچن به حجر اسود بینایش بهش برمیگردد این که معنا نداره امان الله میگه دیگه به ما این چنین نظر رسول الله صلی الله علیه و لا حجر سنگی یا تنفع ولا ضر سنگ نه سودی می رسونه نظرری سنگ سنگ چه رفت بینی داره خوب میفهمین صحابی میگه یا رسول من نابینام چشمم میخوام برگردو روزو بگیر بیا دعا کن بگو من متوسل میشم به دعای پیغمبر یا بگو فرام بکن گفت سب کن بهتره گفت بهتره گفت نه ببینم حد دخل تو این زندگی خواست رسول اعظم ببینه می‌خواد ببینه داره برای خودش بسوادت اونگه باشه چش من برات دعا میکنم ولی تو برو وضو بگی نماز بخون تو دعا بکن متوسل شو به دعای من منم برات دعا می‌کنم رسول زنده است تو توسل بگی به اون مردی که خابیده توی قبر اینجا رسول هم زنده است داره براش دعا میکنه میگه میکن تو دعاتم بگو اللهم شفعی فی و شفعنی فی من را در قبول دعای پیامبر قبول کن و شفاع نیفی یعنی چی شفاع او فیا دعایش رو بپذیر و دعای من را در قبول الدعای پیامبرم بپذیر اگر نه این صحابی مگه شفاعتی داشت در حق پیامبرم پیامبر محتاج شفاعت صحابیه نه اینجا رسول الله صلی الله عليه وسلم بهش گفته که به بجو من تفسر به کجا است اینجا دعاء شفاعت حدیث شفاعت معروفه رسول دعای میکنه از الله می تلا بت در صحنه رستاخیز حساب کتاب برپا بشه رسول شفاعت میکنه اشخاص از امت از جهنم در بیم ببیش وارد بشن شفاعت این یعنی دعاء شفاع او فیا مگه در دعات بگو بار الله من متوسل شدم به دعای پیغمبرت شفاعت او را در من بپذیر و شفاعت من را در او بپذیر یعنی چی؟ این شفاعت من در دعای من را در قبول دعای پیغمبرت هم بپذیر من از او میخوام بار الله که دعای پیغمبرت را سجابت بکنی در من کل داستان چیه منکری توشه؟ چی اشتباهی توشه؟ تحصول به دعاست؟ شما توسل به مرده را ثابت بکنید شما تبرک به زریح را ثابت بکنید تبرک به در و دیوار را ثابت بکنید شما برای ما مدرکی روین بیارید ما عقل ما را ساده نگیرید بازیچه نگیرید رسول الله صلی الله علیه وسلم از بنا روی قبر ما در صحیحین داریم میگن نه شما سنی های تون روید، شما وهابیید شما نمیدونم یعنی چی تون روید؟ پیامبر ما تون رو بوده حدیث در صحیحین و اممت اجماع داره چهار مذهب اهل سنت ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد محمد هر چهار تا اتفاق دارن در احادیثی که در صحیحین و هر چهار تا حرام میبینن بنا بر روی قبر نه النبی صلی الله علیه و آله ان یجسس القبر و یبنى علیه یعنی که شما میکشوا باهایی و تنروید مرا مسخره کردید چهار تا نادون فریبتون میخونم میگم بله چون نمیدونن در کتابی باز نکردن نخوندن 1200 سال قبل امام مسلم این حدیثو جماوری میکنه در صحیح مسلم رو باز بکنید نه شافیای اینطوری نگفتم کدوم شافیای اینطوری نگفتید امام نووی چی میگه در این حدیث امام نووی میگه نه شافعی است میگه شما نمیگید مذهب شافعیت اعتبار داره شما به ما هم توهین میکنید ما تندورا یعنی امام ام شافعی تندورا امام ام نووی این ما بودن برید شرحشون رو بخونید نه شما از وهابیا گرفتین این محمد بن عبدالوهاب این علما عربستان و حنبلی گفتن کجاست امام نووی قبل از محمدها به 60 سال, سال بوده حدیثم در صحیح مسلمه مسلم هم وحابی بود فقط با تهمت زدن و با برچسب چسبوندن فقط میخوام بگن که اینا تون ما رو بگیرن که نشون آبتون از اونجاست نمیدونم اونجا دارن تأمیتون شما یده که ثابت بکنید بفرمایید در همی دیناری گرفتیم بفرمایید ثابت کنید مسلم هم در هم گرفته بود امام, هم هم گرفته بود. امام نووی هم در هم گرفته بود از در هم گرفته بودی از محمد و حاف حدیث درست اینه حرام بر قبر بنویسی نه ان یکتب نه ان یبن علی بنا بکنید حرام نه ان یجسس گچکاری بشه نه علا گچ سیمان گل نه نهی رسوله سرسان داری بر چی میده؟ بر حرمات شما بر حرام متوسل میشی تبرک بجوید بر حرام پیانبرمون صلی الله علیه وسلم حرام کرده بر ما محل اختلاف نیست. مطابق دلیلیم شما بفرمایید امام منشافه ای اگر خلاف این گفته سر و چشم بله این که شما تهمت بزنید افتراب بندید دروغ بگید آقابت دروغگویان وخیمه بین ما و شماست شما الله در روز قیامت غذابت بکنه در مقابل این افتراها و دروغ‌ها نه خداوند در قرآن گفته اصحاب کف قالوا ابن عليه منانا اصحاب کف کسو دوستانشون چیه اشخاصی جوانهایی از ظلم و ستم و شرک فرار میکنن به یک غوی الله میخونتشون توی اون غار بعد از 300 سال, سال بیدار میشن میرن به همون شهری که اون ظالمان و مشرکین توش بودن یک معجزه‌ای بود برای اونها که اونها ایمان بیارن اون ظالمین بعد که اومدن به غار یکیشو که رفته بود بعد پیگیری کرد این به کجا میره رسیدن به غار غار رو دیدن دیدن که بله اینها سالمن اینها مال سی سال قبلا و از اومتای قبل بودن اینها گفتن ما بیایم بر سر قبر اینها مسجدی بسازیم، بنیانی بسازیم. قال الذين غلبوا على امرهم. اونایی که غالب بودن مشرکین، اومدن گفتن که ما بیا مسجدی اینجا بسازیم، ضریحی بسازیم، بیا اینجا بنیانی را بسازیم. اینها وحی بر شده بود که اینجا بیا مسجد بسازن؟ اینها پیغمبر الهی بودن؟ این مشرکینی که از دستشون این افرادی که در غار به غار پناه برده بودن، اینها پیغمبر بودن یا ملاکی بودن؟ بلفرض صحت، اینا آدمای خوب، پیغمبر که نبودن. بلفرض اینا آدمای خوب، دینمون که نیست. اینا دین امته پیشی پیغمبر ما ما رو نهی کرده گفته نه سازید روی قب نه ای نه منزلی نه قبهی هیچی نه سازید همون خاک بهش بر بگردونید آبی روش بریزید که اون خاک پراکنده نشه تماش رفت نه درختی بکارید نه غنچهی بکارید دین ما شرع ماست اضافه حاشیه نه بر ما ما دینیمون بلدی ما می دونیم سخن الهی عربی که داره با ما صحبت میکنه این زبان لغت عرب لغت مادری ماست ما میدونیم سخن الهی را میدونیم میتونیم درک بکنیم میتونیم کسر را بفهمیم که از کجا شروع شده به کجا داره خاتمه میابه بلفردم بلد نبودی میرفتین میخوندید مطالعه میکردین ولی اینکه ما به من داده بشه خرافاتی بدعتی نه ببخشید قال الله تالله انك لفي ضلالك القديم قرار دارن یوسف حالا بعضی گفتن نوه های یعقوب نه کلا نوه بودن و فرزند بودن و و قافله ای که رفته بودن و یوسف علیه الصلاه و السلام پیرهنشو میده دستشون بعد از اینکه یعقوب میگه من بورا حس میکنم اینها میگن هنوز تو در اون اشتباه قدیمی تاسی هنوز اون حب علاقه یوسفی در قلبت قالوا تالله قسمك الله فی لفي ضلالك قدیم هنوز هنوز اشتباه قبلی هنوز هستی هنوز با وجود این همه مثلا بلا و مصیبت به خاطر یوسف کشیده و چشیدی ولی با وجود هنوز حب اون یوسف در دلت هنوز اشتباه تو داری تکرار میکنی هنو. اون غیرته اون حسادته هنوز دلشونه دل قلبه قلب حسوده قلبی که تقوا درش ضعیف شده قلبی که ایمان دو تقوا درش ضعیف شده قلبی که حب دنیا داره الله داره رو گوشت میکنه مثل برادران یوسف نباشید دنیا اینطوری میکنه حسودتون میکنه دنیا قلبتون رو تاریک میکنه فلما ما انجا البشیر القاه على وجهی فرتد بصيرا فلما جا البشیر البشیر کسی که بشارت میده اینجا بشارتی برای یعقوب علیه السلام بر اینکه فرزندش یوسف زنده است و اون قمیصی که بوش رو از فاصله دور میکشه و اون داره به من شامش میخوره واقیت داره حقیقت داره واقعا پیراهن یوسف، واقعا یوسف فرساده اون پیراهن و واقعا و حقیقتا یوسف زنده هست این بشارته جعل بشیر آمد اون کسی که مجده به هم رایشه که این مجدگانی را به یعقوب بده بل اینکه یوسف نه اینکه زنده است بلکه همه کاری امپراتوری مصد شده و خزانه های مصد به دستش افتاده عزیزی از عزیزان مصره همه کاری مصد شده امپیران روی صورت یعقوب میندازه و یعقوب علیه السلام با امپیرهان بینا میشه قال علم اقول لكم انی اعلا من الله ما لا تعلم نگفتم بهتون من چیزی از الله میدونم که شما نمیدونید بله پیانبره بله تا اینکه کسی به من نده که بگه اینجا این پیانبر متوسط شده به پیانبر دیگر این پیانبرم پیانبر الهی بوده که مدد میشده از الله با وحیه محتاج پیانبر دیگر نبوده الله فقط سبب قرار داده اون پیراهن که بدون فرزندش زنده است و این ای بشه هم برای خودش هم برای فرزندش که بینایش دوباره بهش بر بگرده که فرزندان بدونن هم یوسف پیغمبره هم یعقوب پیغمبره این دوتا الله هست که یاریشو میکنه ایمان به پیغمبران اون چیزی که میگن حقه اینو درش کمبود داشتن فرزندان یعقوب باید به این نتیجه یک الله یک ابزاری وسیله قرار میداد که اینها بدونن که یوسف پیغمبره و یعقوب پیغمبره این وسیله چی باید باشه؟ این معجزه چی باید باشه؟ این معجزه باید پیراهن باشه که هم صدق یعقوب کشیدن اون باشه که ممشامش بخوره که این معجزه هست و هم این که این پیراهن وسیله بشه برای بینا شدن یعقوب علیه الصلاة والسلام بس دوتا معجزه هست هم برای یوسف هم برای یعقوب برای صدق نبوتشون صدق ارتباطشون با الله جلشان سبحانه کنه سبحان سبحانه بحمده و صلی الله علی محمدین و علی محمد